به نام خدا صحبت این درس ما مسئله هجاب زن هست به طور کلی مسئله به نام افت و اسمت زن که بیان بیرونی و آن حجاب نامیده شده و اوقل دوعده هست که برای جامعه ما میوریترین محزله اجتماعی و سیاسی و اعتقادی ماست و یکی از تشنزادترین و پر مجااد ترین مزلات هم در سطح کشور ماست و هم، یک موزدهی بین‌المللی شده و میره که اصلا با سرنوشت این کشور و این انقلاب و بلکه اصلا سرنوشت دین و مسلمانی ما آقا رقم مخوره و همری واحد بشه مثلا حجاب و سرنوشت یک ملت برای ما یه همچین اهمیت پیدا کرده و اهمیت این مسئله در همه جوامی قربی و شرقی در سوی تاریخ وجود داشت این اهمیت فقط این نیست منطقه در کشور ما چند است که اهمیتش تا این حد یک موضوع دریجه یک شده خاطر گذار تاریخی جامعه ماست از مرحله سنت به مدیر می این برانه ها را جوامه دیگر هم داشتن و تیگردن جنبی دیگر اهمیت این مسئله برای کشور ما اینه که در کشور ما یک دین زندهی مثل اسلام و خاصه تشییح حضور داره و بنابراین اهمیت این مسئله اسمت و افت زن رو که مسئله بقای خانواده هست رو دو ست چندان شدیدتر کرده این اهمیت رو و برای جامعه ما انقدر آسانی نیست که از این مسئله خود به این آسونی بگذره ببینید وقتی از حجاب صحبت میکنیم به نظر میسته که یک مسئله خاص زنه حالان که واضحه که طرف دیگر این قضیه مرد قرار داره اجاب زن در رابطه با مرد، افتاد و اسمت زن در رابطه با مرده بنابراین این مسئله صورت ظاهری مسئله زنه ولی دفت پس برده این مسئله مرد قرار داره پس بهتره که این مسئله رو از رابطه بین زن و مرد شروع کنیم از مسئله برمیگرده به رابطه آدم و هوایی ببینید ما در خلقت آدم در قرآن و سایر کتب مقدس داریم که خلقت ازلی آدم بود و آدم در بعد به خلقت موجود کامل و خلیفه خدا بود صاحب روح و همه کمالات بود تا حدی که همه ملایق سجده کردند آدم در اون موقع هوایی وجود نداشت در حقیقت موقع هوا به مصابه جنبهی از موجودیت باطنی آدم و در باطن آدم حضور داشت همچون روح آدم بود ولی در مرحله دوم خلقت آدم اتفاقی افتاد و آن این بود که هوا از بطن آدم خلق شد طبق کلام قرآن و سولات انجیل هوا یک مخلوق ثانویه هستش که از آدم خلق شده و خداوند او رو از بطن چپ آدم بیرون کشید خب از این بیان خیلی بازی میتونیم درک کنیم که مثل اینه که هوا از دل آدم بیرون کشیده شده مثل اینه که هوا جمال دل و روح و معنای آدم بوده اومده بیرون و تجسم و مخلوقیت و مادیت پیدا کرده در بیرون خب از همین بیان بهتر میشه درک کرد که چرا آدم یعنی مرد همیشه قلبش به سمت زن مایل هست و چرا شدیدترین گرایشات و آرزوها و امیال مرد همیشه در سمت یک محبوبی بوده که زن هست و همسر هست خب پس این مسئله ریشه در ذات خلقت داری در واقع عشق آدم به هوا دقیقا مثل عشق آدم به قلب خودشه عشق آدم به روحی هست که از او به بیرون آمده در حقیقت میشه گفت بعد از جدا شدن آدم و هوا از کالبت یگانه انسان این که اینکه انسان دو تا شد، دوگانه شد تبدیل به آدم و هوا مرد و زن شد و از این محل است که در حقیقت دوران از خود بیگانگی و دوگانگی شروع شد یعنی انسان دوگانه شد دو تا شد از موجودیت وحدانی خودش خالش شد و دوگانه شد خب تعمق در این شیشن این واقعی البته شاید مهمترین معزله فلسفه و حکمت و معرفت باشه و هست ما حالا از این جنبه فعلا نمی‌خوام به این مسئله بپردازیم در همین حین اشاره کردیم تا بتونیم مسئله رابطه زن و مرد و نهایتاً معضله اسمت و عفت و حجاب زن و مرد و قرار بدیم بنابراین از این مرحله سری می‌گذریم فقط اشاره کردیم بنابراین خیلی واضحه عشق مرد با زن به یکدیگر در واقع عشق یعنی شدیدترین گرایش، شدیدترین نیاز، خب شدیدترین نیاز ذاتی هر بشری در یک جنس مخالف تجلی دار می کنه که اون محبوب و نهایتا همسر هست در حقیقت وقتی حقواز سینه آدم بیرون آمد، آدم دچار احساس از خود بیگانگی شد و دیگر آدم احساس وجود رو در خود از دست داد. آدم دیگه در خودش احساس وجود نکرد. اتکای به نفس خودش رو از دست داد. اتکای به ذات خودش رو از دست داد. گویین که ذاتش برون افکنده شد. و از او جز یک تن با مجموعه ای از صفات بیزات باقی نماند. گویین که ذات تا آدم برو نفینده شد و در صورت هوا متجلدی شد حالا لغت ذات رو استفاده کنیم یا دل بگیم و یا روح بگیم فعلا ما این لغات رو ظاهرا مترادف بکار البته اینا مترادف نیستیم واجهار بکاریم بریم تا نشان بدیم که نهایتا هوا جمال باطن مرد هست و مرد خودش رو در او احساس میکنه در او احساس وجود میکنه و خودش به خودی خود در خودش احساس بیگانگی و از خود بیگانگی میکنه و احساس میکنه که خودش در خودش نیست عشق آدم به هوا عشق آدم به اون خود خودشه خب هوا هم همین وضع احساس رو بگونی دیگر داره در واقع از این دیدگاه اینکه هوا از دل انسان از سینه انسان از بدن انسان، آدم بیرون آمد. پس در واقع باعث که هوا هم، چون از خانهش بیرون آمد و بی خانمان شد. خانه وجودش رو از دست داد. اون حراست و امنیتش رو از دست داد. و اوریان شد در واقع باعث از این لحاظ باعث کرد هوا، گویا جمال اوریان روح و دل یا ذات آدم جمال اوریان اون وجود آدم هست پس نیاز به آدم به صورت عشق زن به مرد واقع میشه گفت بیان بی خانمانی و بی جایی حواست او این که حواب میخواد دومستورو برگرده به مرد و بعد او وارد بشه و در او احساسی وجود میکنه. برای همین کمال رابطه آدم هوایی، رابطه ازدواج و همسریت و رابطه هم آغوشی است. ببینید زن در آغوش مرد قرار میگیره. اصلا اتوماتیک همینطوره. مرد در آگوش زن قرار نمیگیره. زن در آغوش مرد قرار میگیره. ببینید یعنی میخواد بر اون وارد بشه. در او قرار بکن برخواه ما میدونیم در واقع هماغوشی که اشد این نیازی آدم هوا به همدیگه هست چین اتفاقی نمیفته نهایتا هوا و زن برموجود مرد که وارد نمیشه که این چیزیست مسلم برخواه این دوگانیگی و این بیگانیگی وجود داره همیشه وجود داره خب از همینجا ما میتونیم درک کنیم که مسئله‌ی ولایت زناشویی هم برخواسته از همین راز خلقت این ولایت بارها گفتیم فقط ولایت مرد بر زن نیست ولایت زن هم در مرد هست در واقع مرد بر زن ولایت داره و زن در مرد ولایت داره در مرد ولایت بهمفهوم محبت و نیز به مفهوم اراده و فرمان هست هر تا هست در واقع میشه گفت اراده و فرمان و بلایت زن در مرد باطنی است نامرعی است ولی بلایت مرد بر زن ظاهری است بیرونی است دنیوی است همینطور که مثلا مسئولیت و وظیفه حراست از جان و ناموس و معیشت و سلامت زن ها بروده مرد مرد بایستی برای زن خانه درست کنه و زن بر خانه مرد وارد شه این خانه رو مرد با تمام وجودش درست کرده و زن بر این خانه وارد میشه برای همین صاحب خانه ذاتاً زنه مرد صاحب خانه نیست. بنابراین به میزانی که این ولایت بین زن و مرد زن و شوهر روخ میده و هر دوتا این معرفت رو دارند و این تلاش رو میکنند تا این ولایت رو محقق کنند و اصول و آداب و حقوق این ولایت رو که تماما در دین اسلام آمده محقق بشه به هم میزان این زن مرد در رابطه با یک دیگر احساس وجود میکنند و به رضایت میرسند و آرام و قرار پیدا میکنند و به قول قرآن با همدیگه اونس و الفت پیدا میکنند به میزانی که زن ولایت مرد رو میپذیره در امور دنیوی در امور مادی، در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روابط اجتماعی و معیشتی در امور بیرونی و دنیاوی است ولایت مرد رو میپذیره میتوانه بر مرد وارث شه و در دل مرد ها قرار گیره و تحت شعای دل مرد احساس وجود بکنه و آرام و قرار پیدا کنه و مرد هم به میزانی که این ولایت رو که یک مسئولیت بزرگ است گردن میگیره این مسئولیت رو نسبت به همسریش و این ولایت رو القا میکنه گاه حتی شده با قهر و قذب هم القا میکنه و این شامت رو داری که القا کنه آن مرد هم چنین آن زن همچنین چنین مردی را دوست می‌داره، برای اینکه اون نیاز ذاتیش اینه که مردی بر او ولایت داشته باشه. برای همینه حتی زنان مدرنی به سلاح آزادی خواب و فمینیست هم از مردهایی که این ولایت رو ندارند یا القا این ولایت را ندارن که این خود تمامی مسئولیت زناشویی همینه هست چنین زنهایی یا چنین مردهایی، علا رقم عدمیلشون نفرت پیدا میکنند و نهایتا این رابطه پاره میشه و هم جدا میشن زن علا شعارهای فیمینستی و برابری و آزادی خواهیش ذاتن و غریزتا و فطرتن نیازمنده اینه که مردی بر او حتی شده با قهر و قذب ولایت داشته باشه این زن از مردهای به اسطلاح ملوس و بی اراده که نمیتوانن این ولایت رو داشته باشن و پشت سپر شعال های برابری پنهان شدن تا زیر بار این مسئولیت عظیم مادی دیمانگی نرند این زنها از همچین مردانی نفرت دارند یکی از دلایل فروپاشی زندگی های زناشوی و انقلاز ازدواج نابودی این ولایت مرد نسبت به زن هست این یکی دلکترین دلیل انقلاز خانواده این هست که مردان تحت شعارهای برابری این ولایت رو دارن از دست میدن گاه جاهلانه و گاه فرصت طلبانه این که این ولایت دریایی از مسئولیت است خب حالا این جنبهای معرفتی کلی رو که باشتر بگذاریم سریعتر برسیم به بحث اصلی ما که مسئله هجاب است بنابراین اگر زن به مصابه روح و ذات اوریان شده مرد هست پس بیپناست باحال در عالم خاک حتی اگر در بلایت مرد هم باشه برحال بیرون از وجود مرده پس نیازمند چه چیزیست پوششه هجابه ها؟ یک روحیست اوریان بایستی خودش رو بپوشونه روحیست اوریان و بهقایت لطیف که آفتهای محیط او را بیمار و رنجو رو تباه میکنه و او رو نابود میکنه. بنابراین همون بحث خلقت آدم هفوا خیلی واضح به ما میآموزانه که چرا حجاب حجاب به یک امر پوششی نه برای زن اینقدر واجبه برای زن برای مرد یک امر است پس واجب بودن هجاب برای زن در ذات خلقتشه حجاب زن رو مسون میداره از تباه شدن زن مثل یک گوهر است مثل یک مرواریدی است که از صدف وجود آدم بیرون آمده و لذا نیازمند خلاصت از خودشه و این حراست همان حجاب پوششی هست و البته مراحل امیقتر و باطنی‌تر این هجاب که حجاب نگاهه اجازه نده نگاه های نامحرم و دوست بر او وارد بشن حجاب کلامه، حجاب رفتار و نشست و برخواسته و حجاب لباس است بنابراین تا اینجا لازم معرفتی ما درک می کنیم که این یک امری وجودی و این مسئله قراردادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیست چرا که نیست برای اینکه ما می‌بینیم در سراسر جهان که زن‌هایی که تحت ولایت همسرشان میستن یا قبل از ازدواج تحت ولایت پدرشان میستن یا یک مردی مثل برادرشان تحت چنین ولایتی نیستن اینها در گزند نگاه های هرزه اینها وجودشان به سرقت میره قطع قطع از دست میره وجودشان بنابراین مسئله هجاب این مساله حجاب پس از ایلامه ثانویه است خود حجاب و حفظ اسمت و افت برای زن حاصل پذیرش ولایت زنوشویی است زنی که ولایت شوهرش رو به هر دلیلی نمیپذیره او حجاب رو رعایت نمی کنه نسبت به مردان غریبه و خودشو در معرض نگاه مردان غریبه قرار میده چرا برای اینکه زن ذاتاً متاج اینه که به معروف از مردی دل ببره و بتونه مردی وارد بشه دل مردی رو به دست بیاره یعنی در واقع خانهی وجود به دست بیاره زن اگر میگیم زن ذاتاً دلبری میکنه تن نازی و زن عمری ذاتی است تا زمانی که بتونه خانهی به دست بیاره برای اینکه زن احساس بیقراری و نابودی داره تا زمانی که محبوب دل یک مرد بشه. و این کافی نیست و ولایت آن مرد را بپذیره و لذا جز برای آن مرد حرام باشه. فقط برای آن مرد اوریان باشه، برای غیر از آن مرد کاملا پوشیده باشه. برای اینکه یک زن در آن واحد نمیتونه در دو دل یا تا دل جا بگیره، طبیعی است. همین اگر زنی که محبوب، مردش همسریشه، این حقوق را لعایت نکنه و تلاش کنه که دل از مرد دیگریم هم ببره که به گمان خودش خودش دو تا یا ست تا محبوب داشته باشه او همه را از دست میده تین چیزی هرگز ممکن نیست بنابراین این, این از لازم محسوسات هم واضح است که زن خانه وجود و بهشتی جز دل مرد نداره با آنچه که حجاب و حفت و حسمت زن نامیده میشه تمامیت دین زن همینه ببینید زن به هیچ زحمتی یا به ناگه لطف الهی مورد محبت و نظر دل یک مردی قرار میگیره و همسر او میشه. خنابراین اگر محبت زنی در دل مردی قرار گرفت این ازدواج واجب هست از اگر آن زن بخواد بازی کنه با دل آن مرد یا همچنین آن مرد بخواد بازی کنه با دل خودش بزرگترین خیانت ممکنه رو بر سرنوشت و حیات هستی خودش وارد کرد خب این بازی با دل در تمدن جدید در سه بازی های گیل و بوی فریند ما میبینیم که همه دختر و جوان قبل از ازدواج ها خودشان را تباه کردن و متاسفانه بخصوص در قدم روی شعار های بلابری و عشق های بی خود که شعار مدرن هست که همه اینها رو تباه کرده آنها نمیخواهند به ازدواج مردی در جان که محبوب رو باشتند. زیرا احساس میکنند که در اونجا بینید متعهده به چی به عهد، به وفا، به حجاب، به فت به اسمت تو نمیخوان وفادار باشند رضا میرن با کسی ازدواج میکنند که فقط مثلا پوست و پول و مقام داشته باشه خب اینها ها آغاز خودشون را نابود کردن و این زندگی جهنم واقعی فرد اینکه همه زنهای مدر از ازدواجی که با محبت باشه فرارن، فراری هستند لشنه که نمیخوان تعهد وحور داشته باشن این از کفرشونه و این آغاز تباییشونه و اما زنی که ازدواج کرد با مردی که محبوب اوست در واقع در دل آن مرد قرار گرفته یعنی خانه وجود خودش رو یافته خب برای اینکه که بتونه این خانه رو حفظ کنه که این خانه بهشت اوست جاودانگی اوست بایستی در رابطه با بیگانگان و نامهرمان حجاب و افت و اسمت داشته باشه تا بتونه در این دل قرار بگیره این دل که خانه وجود اوست در دل این صورت خداوند او را از این دل بیرون میرانه و او رو در به در و سرگردان کوچو خیابان میکنه و این سراغاز نابودیه بود بنابراین اگر دین خدا برای زن جز افت و اسمت و حجاب هیچ راه دیگری در دین قرار نداده میبینیم که جز این همی چیزیگه این زن نیاز نداره از یک لحظ دینداری زن بسیار آسان یک قلم کار بیشتر نیست که برای مرد دین و دینداری بسیار سختره نیزن برای سعادت خودش برای حفظ دین خودش و برای عزت و احساس جاوزانی خودش فقط کافی هم یک کار رو بکنه. حفظ و افت و نسبت به بیگانگان تا بتونه دل مردش رو که خانه وجوده اوست برای همیشه حفظ کنه و دران دل قرار یابه و دران دل بتونه رشد کنه ولذا به صاحب این دل که خانه اوست نیز بایستی اون حقوق رو ادا کنه خدمات رو انجام بده همون خدمات که خداوند تاییم کرد همونطور که مرد هم وظایفی داره که ولایت مردانه اوست بایستی وظیفه وزیفه انجام بده وگرنه گرنه آن زن از دل او بیرون خواهد رفت یعنی خدا او را بیرون خواهد کرد و اون مرد چه خواهد شد به احساس قهتی و نابودی خواهد افتاد. این احساس وجود برای زن و مرد متقابلا وجود داره. برای همین هست مردی که به واسطه عدم انجام وظایف دینی زن رو از دلش بیرون میکنه، او سال احساس نابودی میشه و چنین مردی به هزاران فلاکت و بدبختی میفته، به خودکشی میفته، به اعتیاد میفته، به توهخاری میفته، چرا برای اینکه به قطعی و احساس نابودی میفته و این عذاب عدم رعایت ولایت زناشویی بوده که مسئولیت چنین ولایتی رو مرد نخواسته قبول کنه بله همچنین مردی که بخواد به واسطه حوثبازی های خودش هرزگی کنه با اینکه همسری داره که در دل او قرار داره و به او احساس وجود و عزت بخشیده بخواد حرزگی کنه و دنبال زنهای دیگر باشه و به قول خودش دو تا یا آزن داشته باشه در دل خودش در آن لبایه چند تا محبوب داشته باشه او هم من همسر رو از قلبش از دست خواهد داد و مبتلا به احساس نابودی خواهد شد زیرا در یک دل بیش از یک نفر جا نمیگیره این قانون الهی است. همینطور که زن هم باعثی بدونه در بیش از یک دل جا نداره زن که احساس میکنند که دو تا 3 تا 4 تا مرد داشته باشند گوی که خانه بیشتری دارند این از رعایت هماغت و جمونی آنهاست و نهایتاً بی خانمان میشند هل لازم وجودی و سرگردان میشند و در وقته تباهی و نابودی میفتند بنابراین مسئله افت و اسمت برای مرد هم به نوبه خودش وجود داره منتا صحبت این روز ما مسئله زن هست رعایت افت و اسمت برای زن و مرد در رابطه با همدیگه راز حیات وجدانه آنهاست و راز آرام و قرار و احساس وجود متقابل آنهاست در رابطه با هم دیگر. و اما وارد بحث دیگری بشیم. خب ما میدانیم که هجاب در قرآن کریم مخاطبش زنان مؤمنه هستند و نه تا زنان مسلمه. مؤمن و ایمان رو ما در قرآن میدونیم تری شده مؤمن کسی هست که دین و اسلام در او قلبی و ذاتی شده یعنی احکام دین رو با اکراه و ریا انجام نمیده با شوق با علاقه قلبی انجام میده به این میگن یعنی مثلا زن مومن کسیه که با علاقه و با شوق و ذوق و با اراده و خودش هجاب و افت و اسمت پیشن می کنه نه به واسطه زورهای اجتماعی و سیاسی نه سرس شوهر و پدر و اطرافیان ببینید نشانه ایمان یا کفر است بنابراین برای همینه که خداوند هم هرگز نمیخواد در دین اکراه ایجاد بشه خود قرآن میفرماند که لا اکراه فتیم بنابراین حجاب امریست برای زنان مومن در قرآن مقاطب فقط زنان مؤمنه هستند که خداوند به اونها امر میکنه که اجابتون رو رعایت کنید زیرا بهتر است که آیه اجاب رو ما هم میدونیم خداوند فرمود که بهتره که چسب بپوشونید زیرا بهتر است که شناخته شوید در جامعه به عنوان زنان مؤمنه ها که مرتفع حرزه به شما حواس نکنند بدونن که شما حرزه نیستید و لذا دور شما نیان به این نیت به شما ندیدن نشند چاش به شما نگاه نکنن تازه ببینید همین قوله آیه می‌فرماد که بهتر است که به تقوا و پابیدمانی شناخته شدید بهتر است پس ما ببینیم تازه اینجا هم که تازه این آیه یه حجاب امری است به زنان مؤمنه فقط نه تا به زنان مسلمه تازه میگه بهتر است که شناخته شدید بهتر است یعنی چی یعنی پس مستحب است تازه اینا هم. ببینید پس این مستحب است یه امریکا دابن میگه بهتر است این کار رو بکنید یعنی مستحب است به این بست تازه آیه حجاب فقط مختص زنان است، هست و آن هم تازه مستحبی است یعنی اختیاری است یعنی زنان مومنه این کار رو بکنند در جامعه آسایش بیشتری دارند و با عزت و سلامت بیتری زندگی میکنند و کمتر در معرض نگاه و دام ها و فتنه های مردان هر زده دارد خب این یکی از نقاطی بسیار مهمی میستش که متاسفانه از باب مسئله هجاب مورد نظر نیست که هجاب یک امری است عبادی است مثلا مثل نماز خب ببینید نماز هم همیشه مخاطبانی جز مؤمنان نداره در قرآن و هجاب از امور عبادی است امور عبادی اموری است کاملا شخصی کرکزی خودش میدونه با خودش و خدای خودش جز امور جزایی و حقوقی و قانونی نیست مسئله است کاملا عبادی همینطور که به واسطه نماز نخوندن نمیشه کسی رو معاکمه کرد بس به واسطه مسئله بدهجابی یا بیهجابی هم نمیشه کسی رو جزا کرد معاکمه کرد بله مگر اینکه کسی بخواد در جامعه واقعا به عمد فساد و ای بکنه به شاعه فحشا بکنه نظر جامعه رو و هم در ریزه که این مسئله اصلا این مسئله لاحده هست این مسئله دیگه ریزه دیگه خارج از مسئله حجاب و امر این بانه هست این مسئله کاملان درده و ببینید اهمیت این مسئله واضح است. پس این سخنی وجود داره روزی ادهی از زنان رفتن از نظر پیامبر کردن که پیامبر ما نمیفهمیم این رو این مسائل ها برای ما سخت این همه احکام برای ما مشکله یک مسئله بسیار ساده بگو که یک مطلب خیلی واضحه و کچی که باشه ما بتون با انجام دادن همین یک کار کار بشیم خدا ما رو ببخشه چه کار کنیم ما پیامبر فرمودن که برید پیش فاطمه اونها رفتن پیش حضرت فاطمه و همین سوالو لازم کرد حضرت فاطمه گفت همون یک کار که شما که شما همون انجام بدید ها سعادت مند دنیا و خلقت میشید اون یک کار نگاه نکردن به مردان ناماران تمام شد اگه همین کار رو شما بکنید شما رستگار میشید اینکه به مردان نامحرم نگاه نکنید به نظر من همین کلام وحکمت حضرت فاطمه به نظر من صراط مستقیم سعادت دین و دنیا و آخرت نگاه میکردن دو مردان نامحرم یعنی حجاب چشم این باشه اگر این حجاب چشم باشه طبیعتا حجاب لباس هم متوازیش البته خواهد آمد کسی که مردان نامحرم نگاه نمیکنه یعنی خودشم میل نداره که مردان نامحرم به اون نگاه کنن طب همین طور دیگه مثلا تو وقتی به یک نگاه میکنی دوست تو اون هم اونم به تو نگاه کنه اگر اون به تو نگاه نکنه تو احساس میکنی چهار ادمی بی به تو توهین شده چرا سوبچنی آدانی دوست داره رابطه داشته باشی به وقتی به کسی نگاه نمیکنی تو هم نمیخوای اونم نگاه کنه به نواری وقتی نمیخوای نگاه کنه جذابیت نمیکنی به حجابی نمیکنی زیبایی های بدن تو آشغال نمیکنی تننازی و اشهیاری نمیکنی حتما ببینید همین یک کلمه‌ازه باتمه راز سعادت زن رو تضمین میکنه ببینید عصر جدید چش عصر, عصر برهنه گی زن ن به انگیزن ما در عمل می‌بینیم. بینیم حصر خاانوان نابودی خانواده به عنوان هسته تمدن بشری است خب ببینیم زیرادن از طریق بر خودش هم خودش رو در محلکی نابودی انداخته و هم هرگز نمیتوانه در دل مردی جا بگیره لذا هم مرد رو به معدکی نابودیان انداخته و از این طریق تشکیل خانواده را ناممکن کرده و لذا بشریت رو به سمت و نابودی می بس هر این دیگه که امروزه زن در حفظ بقای بشر بر روی زمین و حفظ سعادت بشر تا چد نقش در اول رو بازی می یعنی اهمیت این قضیه حتی از خود نقش مرد هم بیشتره چرا برای این که مردی بزرگ نمیتونه زن رو بفرشونه خب بنابراین ما میبینیم که این در این زن راز نابودی نسل بشری نشون میده که تا چدی سرنوشت آینده کل تمدن بشری در دست و اراده زن هست خب ببینید وقتی ما سخن میگیم از اینکه دل مرد آن خانه آرام و قرار و اون بهشت و خانه وجود زن هست چرا از دل لحظه میگیم که دل خانه خداست و در واقع وقتی زنی بر دل مردی وارد میشه انگار بر خانه خدا وارد شده یعنی در الهی است بس در واقع در قلم رو رشد و تعالی و عزت و عصمت قرار میگیره خب بنابراین این دل بایستی بتوانه چنین رو رجابه بده در اینجا مخاطب مردها هستند. ما میدانیم هم به تجربه میدانیم هم از لازه قول قرآنی میدانیم که دل چه پدیدهیستر انسان کفر و ایمان و محبت و شفاوت و عزت و عقل و و رو همه چیز انسان دله و واقعا این این حقیقت هست همینطور که قرآن میگه کافران های سقیل دارن قلوب کافران از سنگ سختره قرآن میفرماد برخی از مردمان کافر حتی دلشان مرده است. حتی میفرماد برخی اصلا حتی دلی ندارن کافران خب است که فقط یک مرد مومن میتونه زنی را دوست داشته باشه و به با قلب خودش راه بده و در واقع زن فقط میتونه که در رابطه با یک مرد مؤمن میتونه که به عزت و شرافت برسه، به آرام و قرار برسه و از نابودی نجات پیدا کنه. یعنی دل مرد ممن چون او دارای دلی است مرد مؤمن تو اینکه دلش زنده هست و دلش لطیف هست و اگر زنی برای دل دلوارش در آنجا زنده میشه، به زندگانی میرسه. و رشد پیدا میکنه و همین دلیل هست که قرآن فرمود که مردان مؤمن بایستی با زنان مؤمنه ازدواج کنند و بالعکس یعنی مؤمنان نبایستی با کافران ازدواج کنند چرا درست به همین دلیل زیرا ازن بایستی مرگی قلب مرگ باشه ها و البته زن مؤمن زنی است که محبت را درک که میکنه طالب و محبت هست رضا او در آتش یک مرد مؤمن هست رضا یک مرد کافر نمیتوانه به او عزت و سلامت و حیات و جابدانیگی و احساس موجود رو ببینید این حال رغت نیستن رغت های شاعرانه نیستن اینه واقعیته یعنی دل مرد به زن هستی میبخشه به مرد نیست هستی و آرام و قرار و زندگانی میبخشه آنجه که اسمش خوشبختی هست در واقع خوشبختی چیزی جز این نیست زن خوشبخت زنیست که بتوانه همسر مردی مومن باشه و در دل او قرار بگیره و با رعایت هجاب و قفت و اسمت و وظیفه زناشوی خودش بتونه در این دل باقی بمانه و چهار روز بعد بیرون نیفته خدا او رو بیرون نه ساده زن همینه زن خوشبخت زنیست که بتوانه چنین دلی رو داشته باشه و به توان حقوق این دل را رعایت کنه وظایفی رو که خداوند تعیین کرده رعایت کنه تا نه در این دل قرار داشته باشه که این دل خانه وجود او و عزت و سلامت و رشد خب ببینید این رو هر زنی میدونه که اراده به محبوبیت و محبوب یک مرد بودن یک قدرت و نیاز ذاتی در زنه برای اون ذات معنای خوشبختی و رستگاری و ذات چیزی جزی نیست که خالصانه محبوب یکی یک دانه مردی باشه مشخص و خداوند نیست نیاز او را بدون ایش تلاش برآورده می کنه. همواره برای هر زنی یک محبوب قرار می کنه وزیف زن در مقابله برآورده شدن این نیاز از طریق خداوند چیه؟ که یک این محبت رو شکر باشه از طریق حفظ اسمت و حفظ که همون وفای به اون مرد هست و نیز از طریق تشکر و خدمت به اون صاحب اون دلی که محبوب اون دل هست میتونه این خوشبختی رو حلاصت کنه و نگهداری کنه. چرا مردی که همسرشو دوست داره با تمام هدفش اینه که سعادت و رفاه و عزت او رو تأمین کنه خب از اون زن هم وظیفه داره که برای همون مسلحت خودش و حفظ این سعادت خودش حقوق این محبوبیت رو رعایت کنه این حقوق چی, چی جز حقوق که خداوند در دین خودش قرار داده جز این هیچ چیزی نیست یک فس حجاب و اسمت و افت در نه مهربان، دو مهربانی و خدمت به همسر ت عاکمین خدا و انجام وظیفه و همین سگی خب حالا یکی مقدار بفردازیم به اشکال متفایت هجاب که بزرگترین سوژه و جدال جامعه ما هست ببینیم در یک کلام هر زنی میدونه که لب بیهجابی و بیاسمتی و هر زیگه او در ماهیت کاری که اسمش دلبری کردنه خلاصه میشه تمام دلبری زن نسبت به بگانگان و نامرمان اساس ایدئولوژی و فلسفه بیهجابی و بی است حالا این زن چه با باشه چه بیهجاب باشه چه با چادر باشه چه با مغنه باشه چه لخت باشه هیچ فرقی نداره بنابراین میشه زنی که چادر و مغنه و نقاب داشته باشه از زیر نقاب هم دلبری کنه این رو زنی میدونه. ما مواجه با همچین چیزهایی در جانه ما بسیار هستیم خب این همان هجابهایی هستش که به صورت قانون و حربه قانونی و جزایی و حقوقی زنانی را که مؤمن نیستن مجبور میکنه که هجاب داشته باشند. لذا یک در واقع حکم شرعی رو که هجاب هست رو وسیله کرده برای اشعه اشد فساد این یعنی نفاق نفاق در قلم دین زنانه نفاق در قلم روی اسمت کانون اشد فساد و طبع در جامعه است و کانون نابودی خانواده است. و مهده همه رضایل اخلاقی در یک جامعه است. هجاب به خصوص حجابی که مخصوص زنهای مومن هست رو بر سر زنان غیر مومن کردن معصیتی بزرگتر از این بردین خدا وجود نداره نتیجه هم تمام این بدبختی هایی هست این مفاسیتی هست که در جالبامه اسلامی به وجود اومده عذاب اکراهیست که در قلم روی دین و ایمان پدید اومده زوری که یک عبادی مخصوص مؤمنان هست به زور بر غیر مومنان داره الغام میشه این بزرگترین گناه و است که بر دین خدا شده عذابشن به کل جامعه و مسئولین برمیگرد ببینید پس واضح شد در یک کلام میشه گفت که هجاب برای زن حفظ قسمت و عفت برای زن یعنی نگاه نکردن به نامهرمان و تلاش برای اینکه نگاه نشند نگاه نکردن و نگاه نشدند اما این لبه لب کلام حفظ جاب و اسمت به چه شیوه؟ شیوهی؟ به هر شیوهی به یک مثال فیلم اگر یک زن مؤمن بره در شریع مثل لندن یا نیایوت کن بخواد با مغنعه و چادر و یک سری لباس های عجیب قریب جلب نظر مردان رو بکنه که همه او رو نگاه کنن این عین بیهجابی و بیهفجی بیسمتی است در واقع در چنان جوامه البته اگر زنی باشه خب با سره میکنه کنه در ها که چنین این وضعیتی حاکمه حالا اگر شرایطی جبری پیش اومد جوری لباس رو که جلب نظر نکنه این پس جلب نظر کردن زن منشای بیفتی بیاسمتی و است. چه با چادر جلب نظر کنه چه با منجوب هیچ فرق نمیکنه. ببینید اساس مسئله اینه و زن خیلی خوب میدونه زنی که تحت فشار و زور شوهرش یا پدرش یا جامعه یا حکومت مجبور میشه چادر سرش کنه مغنه سرش کنه خیلی خوب میدونه چطور از زیر این چادر و مغنه دلبری کنه و اشاره ای فساد کنه خیلی خوب میدونه اصلا زحمتی نداره کاری نداره ببینید پس حجاب در ذات خودش مساله عفات و اسمت در ذات خودش ها هیچ فرم خاصی نداره هیچ شکل خاصی نداره. هر زنی میدونه. این چیز مسلمی نیست. ببینید خلاصه کنیم مسئله حجاب و عفات و عصمت رو. گفتیم باز در یک کلام تلاش برای نگاه نکردن بزنانه و مردان نامحرم و تلاش برای اینکه نظر دیگران رو جلب نکنند. ها؟ تمام شد. نگوناکردن و نگون نشدن این اساس عفات و حجاب است. به چه و به هر شیوهی که خود زن خیلی خوب میدونه خودش چیگونه میتونه این کارو بکنه کلی خیلی واضح بنابراین نگاه نکردن که توجیه نداره خود نبایست نگاه کنه و ما نگاه نشدن واضحه زن بخواد خودش نگاه نکنه ولی اگر لباس تری انگیزی داشته باشه دیگران رو نگاه میکنن پس لباس حجاب پوشش طبعا یک است واجب و طبیعی زن چیزی بپوشه که جلب نظر دیگران نکنه به هر شکلی جلب نظر نکنه که دیگران هم اونو نگاه نکنند پس هجاب ها یک مهور بیشتر نداره مسئله نگاهه نگاه نگاه جلب نظر جلب نظر خو طبیعی انواع دیگری از جاب داریم حجاب کلام داریم افت کلام داریم افت رفتار هم داریم در قرآن اومده به زنان مومنه به زنان پیانبر آه. که صداتون رو باریک و دلربا نکنید تا جلب نظر نامهرمان را کنید ببینید صداتون لطیف و خوشگل نکنید تا دل ببرید ببینید خب این هم افت کلام و افت رفتار هست جوری را نرید جوری جوری نشست و برخواست نکنید که جلب نظر نامهرمان رو ببینید دل کنید ببینید دلبری کنید ببینید باید همین مسائل بر برمهور نگاه خلاصه میشه نگاه نگردن و نگاه نشدن پس انواع و اخسام اشکال حجاب یک امری سانوی که هر که اگر مؤمن باشه بخار رایت کنه خودش بهتر از هر کسی میدونه چگونه باستی رایت کنه این قانون حکومت هرگز نمیتونه این مسائل رو کنترل کنه چرا برای این یکی امریست باطنی و عبادی همونطور که هیچ قانونی نمیتونه تصیب بشه که مردمان به زور نماز بخونن نمازهای با حضور بخونن نمازهای خادثانه بخونن مگه قانون میتونه چه اینکاری بکنه اجاب یکی امریست عبادی و در رأس و محور و اساس عبادت زن قرار داره در واقع میشه مهور زن اصول دین عملی یکی یکیه همه فرواته و آن هم حجاب و حفظ افت و اسمته مابقی امور متعاقب و فروات و محصولات این امر به حساب بنابراین به عنوان نتیجه برای پاسخه به مهمترین موزله اجتماعی سیاسی حوییتی جامعه ما به نظر می رسه هرگز علاجی هم نداشته باشه و می رسن کل این کشور و دین و انقلاب رو حتی نابودی بکش کنه مسئله هجا بزنه که از اولین روز انقلاب تا به امروز مسئله پرتنشتر و تشن نجافرینتر از این نبوده و نداشته و بخش عظیمی از سرمایه فکری و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی خرج این مسئله شده و نتیجه مرکوز از ابتدار آمده حجاب زنان مؤمنه بر زنانی که ایمان ندارن ولی خوب زنانی هم مسلمان هرسی میراسی دایی برحال مسلمان های صادقی هستن ولی به مقام ایمان نرسیدن ما بس بدونیم ایمان چه مقامیه در قرآن مؤمنان کی هستند؟ هستن حجاب زنان مؤمن به زور بر زنان دیر مؤمن مثل نماز کندن شمرو ابن مرجم خانمان براندازه و بنیاد دین رو میکنه و بلکه منیاد جامعه و خانمان و خاندان ها رو میکنه یعنی بنیان تمدن بشری رو میکنه و لطمی و معصیتی بزرگتر از این بردین در این کشور اتفاق نیفتاده و بزرگترین خطای جامعه ما بوده چه از سمت دولت مردان چه سمت در مادرها و همسران زرگو و القلدور مردانی که خود ایمانی ندارند و بلکه میخوان زنانشان مؤمنه باشن مسلمان نمیتونن باشن سیرا مردی که واقعا مؤمن باشه این معرفت رو داره که به زور نخواد زنش رو به حجاب در بیاره و به زور همسرش رو یا بچه هاش واداره به نماس خوندن کنه جبر در امور عبادی بزرگترین گناهانی است که در دین اتفاق افتاده و منشأ بنیادین همه نفاقه ها جبر در امور عبادی است که منترین این جبر‌ها جبر در نماز و جبر در حجاب جبر نمازهای جابرانه برای مردان و هجاب های جابرانه برای زنان منشأ تمامی ها و نفاقها و مفاسدی است که این کشور رو در بر گرفته تا دیردر نشده بیاییم به حکم قرآن عمل کنیم و امور بادی رو تبدیل به جبر نکنیم و از لا اطراح فدین اطاعت کنیم تا همین مسلمانی که داریم رو هم از دست ندیم و